یکی نبود جز خدا هیچی نبود زیر این تاق کبود نه ستاره نه سرود امون سهرات و با دو تا لبت گلی پا و دستش کچنوریش و روحش دو گلو خالی و سر دلکش دریای درد در باغ و بسته بود دم باقش و بود امون سهرات پسرات کو رب دریان بسران دخترای من دریارو رو خاطر خاند بسران پفریه و تنگ قلاق پرپاکشون خسته و مرده نیان از سر مزرحشون تنشون خسته کار دلشون مرده زار دستشون پینه ترک لباساشون نمدک پاشون لخت و پتی کلکلاشون نمدی دیشنن با دل تنگ لب دریا سر سنگ دفعه شب تا سهرگری کنون خواب و از چشم کشمه در دوختشون پس میرونن توی درگاه نمور میریدن های شور میخونم، آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن دخترهای نمی دریا کوممون سرد و سیاس. من اول به خدا برد شماست گوره سرد شدن سبزه زرد شدن خنده درد شدن شهه اسبای گاری نمیاد از دل بیشه غروب چرچ حس ها و غناری نمیاد دیگه از شهر سروب ت کوای نمیاد. دیگه محکب نمیاد سروی هتاباپ نمیاد برکت از کومه ر درستم از شانمه رفت، طربا وقتی که برق میچه و بارون میکنه کمون رنگ به رنگش دیگه دیرون نمیاد. روزم این وقتی که دیپ دنیا رو پر خون میکنه سوار رخش قشنگش دیگه میدونه نمیاد. شبا شب دیگه یختون قنه عین چبوتای سیاه شب تو هوا تار میکنه. شب مرواری دوزون نمیشه آسمون مثل قدیم شبا کراون نمیشه قصه کوچیک سر سردی مثل آش جای هر ستار سوسو سو میزنه سر هر شاخه خوش از سهر تا دل شب جقده که هوهو هو میزنه دلا از قصه سیاس آخه پسخونه خورشید کجاست؟ قبل بازش قهره نازش میکنیم، میکشیم مندشو میخریم مندشو مگه زور به خدایی به تاریکی شبتن نمیده موش کورم که میگن دشمن نوره به تیق تاریکی دردن نمیده دختر آیندن دریا رو زمین عشق نموند خیلی وقت پیش بار و بندیلش بست خونه تکند دیگه دل مثل قدیم آشق و شیده نمیشه تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه دنیا زندون شده نه اش نه امید نه شور براه شده دنیا که تا چشکار میکنه مردس و بور. نه امیدی چه امیدی به خدا حیف و امید نه چراقی چه چراقی چیز خوبی میشه دید نه سلامی چه سلامی همه خون پیشنه هم نه نشاتی چه نشاطی مگه راهش میدهم داشت در مرد لوتی تای خنده تو بوتی توی باقه بی بی جون جمجمت برگخزی دیده دهنس قدیم نیست از آب دور میگرف با شنگار باها را از شکو فکر گر آب به چشمه حالا را اگه سر آب خون میکنه واسه چارچیکیه آب چلپا را بیجون میکنه نشا میگندن و میپوسن و شالی میسوزه های دار حاصل بیچاره همون جور تو هوا چشم میگوزه چی میجوره تو هوا رفته تو فکر خدا؟ نه برادر تو نخه عبره که بارون بزنه شالی از خشکی را رو که نشادون بزنه اگه بارون بزنه آخ اگه بارون بزنه دخترها یه نمه درگاه دلمون سرد و سیاست چشم میرمون اول به خدا بد به شماست ازتون پوست پیازی نمیخوایم خودتون دستمونین این جازی نمیخوایم چادر گذی و پاچین نداریم زیر پامون هر سیره قالیچه و نداریم بذارین برکت جادوی شما ده بیرون رو آباد کنه شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه شادی از بوی شما همین همینجا بمونه غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه. دریای امو سهراد و به دریای کبود زیر عبر و مه و دوش شب و از راز سیاه پر می توی دریای نمور می ریدن شور کاسه دریا رو پردور می کنند دخترهای نن دریا فهه آب می شینند و خراب نیمه اریون تنشون خزه ها پیر تنشون هرم سراب خندشون غرغل آب بهشون تنگ نمک وصلشون خنده شک دلشون دریای خون پای دیپار خزه میخونن زجه کنون پسرا اگه امو سهره لبتون کاسه نبات صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات در از عشق شما شور شد رفت. رب وقتمون از زن دردور شد و رفت. راز عشق و سر سهران نریزیم عشقتون تو شور تو دریا نریزیم اگه آب بشه دریا به زمین دست نمیده ننه دریا دیگه ما رو به شما پس نمیده دیگه اون وقت تا پیامد دل ما گنج قنه اگه تا عمر داریم کنیم باز سنه پرد زنبور یه دریا میشه برچ قنمون اون دق میشه تا هر میشه هم موش نداره مگه موش گوش نداره موش دیپار دریا رو خبردار میکنه دن دریا کوچ بدل و لوس و لجود جادو در کار میکنه تا صداشون نرسته لب دریا خضه از لجشقی کشون رو بیدار میکنه اصبای عبر سیاه تو هوا شیکشون بشته خالی رعد روی بوم آسمون آسمون قرم قروم تبل آتیش دو, دو دوم نعره موج بلا میره تا عرش خدا سخه ها از خوشی پریاد میزنن دخرا از دل آب داد میزنن پسرای امو سهرا دل ما پیش شماست نکنه فکر کنین و به زیر سر ماش من دریای حسود کرد این آتش رو دود و دل ریسه باد هیچ صدای دیدهی به گوشهاشون نمیاد قمشون سنگ سبور کشکلاشون نمدد نگاشون خسته و دور دلشون غصه ترک تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سر میدن عشقای شور توی دریای نمود طرقب بلا آتیش آتش تو هوا خیزخیزک موج ابوز تا دنه خدا ند ستاره ند سرود به دریای حسود زیر این تاب کبود جز خدا هیچی نبود جز خدا هیچی نبود